من از تمبلی و بدیهای پیری بتو پنامی بار اله من از عذاب زخو عذاب قبر بتو پنامی لحظات خبری سوائی خلافت.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 السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شنوندگان مسلمان و مومین رادیو صدای خلافت به بخش خبری ما خوش آمدید به امیدین که روزهای ماه مبارک رمضان را به خوبی سیپری کنید امروز سی شنبه نهومی رمزان سال 1437 اجری قمری توجه شما را جلب می‌دارم به آخرین تحولات و پیش های دولت اسلامی نخوص سرخطی چند خبر صلید صلید. صلید. کوشته شدن یک دگروار اردو ملی در شهر جلال آباد سنید سوائی. سنید سوائی. حلاکت 24 عسكر عراقی در فلوجه سنید سوائی. سنید سوائی. سنید سوائی. یک درگیری میان مجاهدین دولت اسلامی و نیروهای مخالف در حلب رخ داد کشته شدن ماوین رئیس پلیسی شهری لیمیرو در فرانسه و حملات تازهی مجاهدین خلافت در رمادی. صلیل الصوار، صلیل الصوار، نشید و درب القتال، و این هم تفصیل خبرها. تازه گزارش های رسیده از شهر جلال می‌رساند که یک دگروال نیره های ارده ملی به شاه حسین در حوزه یازده هم شهر مسکو رسای مجاهدین دولت اسلامی توسط توفنچه بی صدا به قتل رسید. گفته شده است که دگروال کشته شده چندی قبل تعدادی از خانواده های مهاجرین را به اثارت گرفته و به امنیت ملی سپرده بود. خلافت اسلامی در ولایت خراسان چندی پیش به مرتدین پیام داده بود که بزود انتقام مظلومین را خواهند گرفت. این عملیات هم از سلسله عملیات انتقام جویانه است که رخ می دهد. سی روز پیش نیست تای چینین عملیات یکتن از مقامات برندپای حکومت مرتد بنام شا محمود در حسک کشته شده بود. آجانس خبرگزاری اما غسقال یک منبع گزارش می‌دهد که یک مجاهدی دولت اسلامی ماوین رئیسی مرکزی پلیس شهر لیمیرو را با همراه زنش با ضربی چاقو نزدیکی پاریس کشته است خبرها میگوید که زن این شخص نیست در اداره پلیس کار می‌کرد دو هم نکننده استشادی کاروان نیروهای عراقی را در اطراف جنوبی شهر اللوجا هدف قرار دادند تا کنون از جزئیات این دو حمله گزارش داده نشده است در همین حال یک خبر دیگر از امینشهر می‌رساند که در یک درگیری شیمیانی مجاهدین و نیروهای دشمن در شمال غربی امینشهر رخ داد 24 عسکر عراقی کشته و یک اراده تانک ام بی به شمول یک بیل دوزر تخریب گردیده است یک درگیری میان مجاهدین دولت اسلامی و های مخالف در حومه شمالی حلب رخ داد خبر می‌افزاید که در اثر چندین انفجار یازده تن از مسلحان معارض کشته و یک تانکشان تخریب گردیده است این انفجارها زمانی رخ داد که صحوات می‌خواستند بسوی منطقه طلبتال در شمال حلب پیشروی کنند پس از محاصره شهر مینبیج سوی نیروهای آمریکایی و واحدهای کردی برای سی و روزی روز پی پیوپای آب و برق این شهر بر روی باشندگان محل قطع گردیده است این در حالی است که نیروهای دولت اسلامی بر دور استای جقل و معسران در غرب شهر مینبیش دوباره تسلط یافتند در همین حال حالیه خبری دیگر میگوید که 6 تن از اساکری کردی در جنوب شهر ماره کشته شدند این نیروها زمانی کشته شدند که میخواستند به سوی روستای تلقراح در جنوب شهر مسکر در ولایت حلب پیشروی کنند خبر می‌افزاید که نیروهای کردی پس از آن خواهان پیشروی به سوی منطقه مسکر شدند که جنگنده های روسی 50 حمله هوایی را بر منطقه مسکور انجام داد. تازه ترین از عراق حاکی که نیروهای دولت اسلامی بر مقر رسمی اساقیر عراقی در جراشی، واقعی در شمال رمادی، حمله گسترده ای را انجام دادند. خبرهای ابتدایی می‌رساند که در صورت درکی‌هایی که در این محل رخداد، سی و دوتن تن از اساقیر ایرانی کشته و سه رادت تانک بی به شمول دو زریپوش تخریب گردیده است. در یک خبری دیگر آمده است که نیروهای دولت اسلامی بر منطقه بوریشه در شمال غربی رمادی پس از یک درگیری تسلط یافتند. نگفتن نماند که در این درگیری 11 تانک نوی همر نیروهای عراقی تخریب و 5 تانک دیگر به دست شیران خلافت غنیمت گردید. مجاهدین دولت اسلامی اقومندانی بسیج مردمی را در منطقه تارامیه در شمالی بغداد آماج حمله قرار داد که در نتیجه دو محافظ مرتد کشته و خودی وی جراحت برداشت و خبری اخیرین که یک حملکننده استشادی تجمعی نیرهای نظام سوری را در نزدیک مقدر پانوراما در جنوب غربی شهر دیر و زور در همکوبیت این بود آخرین تحولات و پشروی های دولت اسلامی از توجویتان جهان سپاس منحج السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شنان ده های را خلافت باز هم شما را به برنامه منحج تا منهج خوش آمدید میگم باز هم استاد احرار مهمان برنامه ماست و موضوعات را که میخواییم بالاش بحث بکنیم امون موضوعات قبلی است چون ده هفته گذشته بحث ما ناتکمیل ماند خواستیم که برای دیدگاه های مختلف نظام های بحث بکنیم که اینها چند دیدگاه دارن ولی بحث ما نتکمیل ماند باز هم میعنیم برای امون موضوع بحث میکنیم که از نظر کلی چند دیدگاه نسبت به خلقت انسان در جهان وجود دارد أستاذ دعيب ورحمة معلومات بثين الحمد لله وحده والصلاة والسلام على ما لا نبي بعد فأوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسلي أمري وحلل من لساني يفقه قولي وقال تعالى سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم أما بعد الله سبحانه وتعالى درامين حياتك تلاوات شد مي فرمايتك بزوديه نشانه های خود را در اطراف جهان و درون جانشان با آنها نشان بدیم. عصوری فصلت آیه 53 و همان معقولی مشهور است که میگه هر چیز باید از زدش شناخته شود. با شکل کل دیدگاه در پیوند به خلقت انسان دو دیدگاه در جهان وجود دارد. این بس بحث, بحث آخری از در پیوند به همین نظام کمونزم و نظام سرمایداری و نظر پوچ و مزخرف از یا نسبت به خلقت انسان بخاطر که بحث ما تکمیل شود انشاءالله سرازی من تماس میگیریم گفتم که خلقت انسان از دو دیدگاه مطرم میشه یکی دیدگاه های مادی و دیدگاه های پوچ و مزخرف و بیبنیاد بشری و یکی دیدگاه های آسمانی که متعلق به ادیان الهی است با ویژه قرآن کریم دیدگاه جاهلی در زیر مبحث جهانبینی جاهلیت گفتیم که نظر از اون نسبت به انسان همین بود که نا میگفتن که انسان مجموعه از مولکول ها و اتمها ها و ذرات است که فرقش با یک حیوان در سیستم پیچیده عصبی است <تصفيق> و ایرام کفتم که مرگ و زندگی را اینمی زندگی را منحصر میکنه بین تولد و مرگ باد از میگه انسان از هم میپاشه و اموزرات بدنش در هوا از بین میره و نابود میشه ولی بعض نظریات الهادی و پوچ و مزخرف هم وجود داره که سر از او هم یک مقدار تماس گرفتیم که بیشتر نظر نظر ایولوشن یا اصل انواع یا نظر تطور یا تکامل این منصوب است به شارلز داروین زیستشناس انگلیسی که در جد پینجاونو کتابش را تحت اصل انوا نوشد و بدبخت کافر و بدبخت پوچ به این نظر بود که اساس حیاتا به یک میکروب تشبیه میکد امه. که چندین هزار سال قبل داخل آب گرم جمع شده بود و در یکی از مراحل نظر به میکانیزم و نظر به موسیر تکامل که در, در ساختمان همی هستی وجود داره در یکی از مراحل به شادی تبدیل شد <تصفيق> و نهایت عمر از شادی به انسان و نهایتش امو انسان بود در حالی که نظر یک نظر پوچ و مزخرف بود حتی امو خود تصویر نه که شما در انترنت یا در یوتوب یا در در, در, در گوگل سرچ کنید ببینین خود امی انسان هم شبیه شادی بود یعنی <متحن> خود به مردم دیگر قیاس کرده بود در اصل این نظر کی به وجود آورد؟ این نظر خاص است یا عام کلیکی <متحن> نه این نظر بزدازی که مکاتب فکری و مکاتب الهادی توسط جان پال سارتر و روسو و مارکس و لنین و انگلیز و همسالهم فیورباغ و داروین و فرویت وضع شدید هم یکی از مکاتب بود که این نظر به یک نحوه از در بین هستی به پیکر معنویت و به پیکر کتاب های ادیان و به پیکر تفکر روحانی بسیار ضربه قوی و عامل اصلی نظریه خود امیت شارلیس داروین یک انگلیس زیستشناس انگلیسی بود که در هجده پی جانو کتاب خود را تحت اصل انوا و اصل حیات میکروبو و بعدا شادی و بعدا انسان چی کرد حتی یکی از این داروینست های متحصب به این نظر است مگه امروز انسان با چهره مقبول که امروز داره و سردار مخلوقات است و نظر به سیر و تحول که در میکانزم جهان و هستی وجود داره شاید روز رسد که جایش موشو پوشک بگیرد و این نظریه داروینیستا است که در کتاب کتابی به نام انسان و مادهگیری از محمد قطب و یک کتاب دگس است از شگفتی های الله در بدن انسان از راتب تابلیسی و یک کتاب دیگر استک از قرآن کتاب شگفت شف... انگیز اصر و نظریات دیگری هم وجود داره که کلانی نظر به عنوان یک نظر در امو نفسش چی میکنه نقد میکنه و یکی از داروینستای متعصب دیگر هم است که میگه که این محض نظر است ولی نظر, نظر امی مکاتب الهادی باویج مکتب کمونزم و باویجه در افغانستان خلقی ها و پرچمی ها و کسانی که پیروه فلسفه مارس و بود به حد هوا دادن که حالا به تعداد مردم به این باورند که این نظریه یک نظریه صحیح است و به دلائه لستار است ولی بعدا ما دیدیم که بیادر وقتی که بالای نظر بعض علما تماس گرفتن این نظر را در امون نفسش نقد کردن و دلایل مبنی بر نقدشم کرد. در امین کتاب محمد قطب از یک تعداد دانشمندان و از یک تعداد متفکرین غربی دلایل نقل میکنن که بعض فوسیل و بعض اسخان های بازمانده انسان پیشین یعنی در دسترس ام يا و اندیشمندان قرار گرفته کیه ثابت میکنه که یعنی چندین هزار سال بالای از گذشته ولی در شکل و در امو ساختمان و در امو و در امو فیزیولوژی آنها تغییر وجود نداشته. یه خود ثابت می که نظر در حد یک نظر بوده. و یک نظر بوده به خاطر از بینوان یک حرب در مقابل تفکر روحانی و در مقابل تفکر دینی شوه استفاده شوه و به نحوی از انها و به شکل از اشکا همین تفکر مذهبی ده چی کنه زیر سوال ببره و زیر چی ببره و ما دیدیم که در گذشته هم گفتیم که در نفس شادی و در نفس انسان فرق در در در نفس شادی کرو کروموزوم هست در نفس انسان 46 کروموزوم است. که از نظر تیبی هم و از نظر علمی و اصولی هم هر کروموزوم که در در, در بدن یک مخلوق اضافه میشه یا کم بشه زمین آسمان در ساختار و در تشکل و در پیکر از او تغییر می آید. و ما هم دیدیم که اینا میگن که همی حیوان یعنی توقع کرد یعنی استدعا کرد که انسان شود وقتی میگه که جذبه جذبه تغییر و تحول وقت در یک موجود شده میتونه کو موجود دارای عقل و شعور و فکر باشد م. و این نظریه یک نظری الهادی و پوچ و مزخرف متعلق به مکتب کمونزم بود که سالهای متوالی از این نظر به عنوان یک حربه و به یک یک حرکت منفی و به یک تیر کوبنده برای پیکر معنویت و پیکر دین و دینداری از این به یک قضیه استفاده میشن. ولی ما به عدا دیدیم که نظریه هم در حد نظر بود و پود ثابت شد ولی نظر مقابل این نظر نظر دینی و نظر سازنده و نظر است که الله سبحانه وتعالی و را در قرآن کریم وضع کرده که نظر نظر خلقت در،, در نفس قرآن کریم یا در موتون دین یعنی نظر است که با اصول و زوابط و منطق و یک فلسفی بنیادی استوار است ام. و امروز میبینیم که داشته های علمی همه همی در کل همین نظری قرآن بینوان یک نظری بنیادی در پیوان به خلقت انسان چی میکنه تایید میگه شما اگر مباحث خلقت در خلال بحث های دکتر زاکر بشنوین در میبینید که او به شکلی در معذر دها هزار نفر اندیشمند و متفکر و صاحب بصیرت و مردمی که اهل دانش را به عنوان یک قضیه ثابت ساخت که چیزی را که قرآن خلقت در پیوان به انسان و جنین و مراحل تکامل انسان در بدن مادر ذکر میکنه از این و بعد تاسیس و بعد همان چیزیست که قرآن کریم میگم این نظر از اینا را در جهان کس دیگه این تایید کرد یا خیر؟ بله این نظر که است که حال هم به عنوان یک نظر در باز پوهانتون ها بوجه رشته باهنزه ساینس سرشته بیولوژی بین عنوان یک نظر خواندم بشه و حتی خلقی ها و پرچمی ها و ستمی های بدبخت کافر و مرتد هم حالا به می نظر است ما دیدار کسی دی از زوستای که از مکتب از خیش و قوم ما یا از کسانی که در میم مقییم قابل بودن امی خلقی ها و پرچمی حالا هم به این نظر است. سالان که این نظر به عنوان یک نظر رد شدن در پیوان به خلقت انسان در قرآن کریم دو دیدگاه دو سه مراحل ذکر شده یکی مرحله است که میگه پیش از این در حدیث بخاری آمده است که مفهومش چنین است که الله سبحانه مگه میگه چیز نبود ولی الله سبحانه بود و بعد از او الله سبحانه وتعالی پینجا هزار سال قبل اقدام به خلقت قلم کرد بعد از او به قلم امر شد تا بنویستد آنچه که در تقدیر الله سبحانه وتعالی است. ولی بعد وقت که زمین و آسمان خلق شد در شش روز الله سبحانه وتعالی اراده کرد تا انسان خلق کنه اینی یک مرحله خلقت انسان است که الله سبحانه تعالی با امون کمال قدرتی که داره به ملائک امر کرد که تا از مختلف نقاط یعنی خاک چی کنه خاک جمعوری کنه وقتی که خاک جمعوری شد با امون تنوعی که در نفس خاک بود یخاک جمعوری شد باد ازو الله سبحانه و تعالی بالای ازی آب گذاشت و یی با مدست دستان بلا کیف خود چی کتد خمیر کتد و ازی یک و جسد جور کرد و جسد جور کرد با اینمی پیکر و امی خصوصیات که انسان امروز داره یعنی نو سرخ باد ازو جسد ازی در کجا گذاشت در جنت گذاشت که شیطانم بالای سیر میکد و از زمان بدو تاسیسه یا بدو خلقت اراده اغوای انسان ندای بعد از وقتی که روح دیشد یعنی انسان آدم علی السلام خلق شد یعنی آدم علی السلام نفسش از خاک خلق شد یکی که در خاک هم بعضی کمالات هستک که که همان گفته های علمی امروز ها ثابت میکنن که در بعض کتب که متعلق به اجازه علمی قران کریم شما مراجعه کنی در مییابید که در نفس خاک یعنی خاکی که یعنی توام با آب باشه یعنی بعض عناصری که در بدن انسان است یعنی به سبب ذو انسان خلق میشه در نفس آب و در نفس خاک هست تا کلمه یک کتاب چند سال پیش مطالعه کرده بودیم ولی مرحله دوم این مرحله اولش بود مرحله دوم الله سبحانه تعالی در سوره مؤمنین یعنی چند مراحل از خلقت انسانه میگه که الله سبحانه تعالی میگه سوره مؤمنین و آیت چاردام ترجمه سپس ندفه را به صورت علقه یعنی خون بسته این یک مرحله شد و علقه را به صورت مدغه چیز شبیه گوشت جویده شده و مدغه را به صورت استخانه ها در آردیم و برستخانه ها گوش پوشاندیم. پس آن را آفرینش تازه دادیم و در آخر میگم فتبارک الله احسن الخالقی یعنی پس بزرگ است اللایی که بیترین آفریندگان در ریاض همه آیات که متعلق به خلقت انسان بود ایده را کردن اما او اندشمندان مقیم ریاض. بعد از او یک اندشمند که در اینمی رشته یعنی در رشته جنانشناسی یعنی تخصص داشت در پوهنتون تورنتو. ای کیت مور بود. ای را بینوان یک کس خاص و ای داشتهها در دسترسش قرار داد و گفت که تو نظر علمی تا یا نظر معاصر نسبت به خلقت انسان در پیوان بینمی آیات قرآن کریم چیکو گفت بعد وقتی که تحقیق کرد شکف زده شد و در کتاب خود بعض عناوین بعدی را که گنجانید ای بینوان به انوان یک اصل تایید کرد که داشته های علمی در پیوان به علم جنین در یک کتاب باستانی که مقصدش قرآن کریم بود و امروز هم ما بینیم این داشته که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم به اینوان یک اصل بنیادی در پیوان به خلقت انسان ذکر میکنه همان است که ساینسی را تایید میکنه دو بعضی مسائلی که در قرآن کریم یا در کل مسائلی که در قرآن کریم آمده است، امی نفس عقل یک مسلمان تابع نقل است <تصفيق> اگر نقل بر ما میگه که سیاه سیانه صفید است و جهان در جانب دیگر اندشمندان و جهان میخیزند اینمی سفید بر ما پس سیاه ثابت میکنن ولی ما مکلف استیم که از نقل تابیت کنیم اما قسم بود وقتی که از دیالانها در پیوان به قضای روزه و قضای نماز در روزه سوال میشه یعنی میگه چی علت است که بالای زن حائز قضای روزه هست و قضای نماز نیست او قیلقال نمیکنه که یک زن متفکر بود یک زن بود که قیلقال یعنی ظرفیت قیلقال داشت بود ولی چون عقلش تابع نقل بود میگه الله، رسول الله صلیم بر ما چون کردن این مسائلی که در قرآن کریم آمده ما مکلف نیستیم که بر مردم در پیوان به او قناعت بدیم ولی بعضی گفه که آمده هم ثابت می و در یکی از آیات قرآن کریم در سوره تین الله سبحانه باز نسبت به انسان میگه که, که ما انسان را در بهترین شکل و سیما آفریدیم و در انفتار آیت اشت الله سبحانه میگه که و آن را به زیبایی شکل و سیما و قامت اختصاص نموده حتی یک اتفاق عمومی بین عندش انرژی وجود داره کمی انسان کس در در در خور خود یعنی اشرف مخلوقات هست. یعنی در این جمله چند هزار مخلوقی که هستک نفس انسان اشرف مخلوقات و شرف بودنش به اساس اینمی وجود است که الله سبحانه و تعالی به دست دستان بلا خود چی کرده یعنی به وجود آورده یا از شرافت علما داشته میگه که یا از شرافت انسان است ولی از نظر علمی وقتی که در نفس انسان میایم می یعنی چند مسئله بسیار جنون میگه در در نفس شبکه و سیستم چشم انسان یعنی نفس چشم انسان که دارای ده قسمت است که در بین مخروط چشم, مخروط مخروط چشم و کمانک یک و چل میلون گرینده نور یافت میگردن و پنج هزار تار عصبی است که مواد بیرون چشم را به مغز انتقال میدن و در گوش هم قسمت های مختلف وجود دارد که سی هزار سلول جهت پایینترین صداها وجود دارد و بر روی زبان جهت شناخت مزاهای ها، تل، تلخ و شیرین و امثاله ها های مخصوص وجود داره یعنی امی خصوصیات و جزئیاتی که در بدن انسان از نظر علمی وجود داره کلش دلالت بر این می کند که انسان به عنوان یک انسان و یک, یک موجوده متکامل خلق شده و کلن امین نظر مخالف نظر پوچ و مزخرف داروینیس ها و داروینی ها در, در, در بعض آثار که در امین کتاب محمد قطب ذکر شده خود داروینیس ها ایره در یک حد نظر میپندارن که نظر انسان شدن شادی یک محض نظر است و این مهم, مهم هم نیست و میگه تابال بیقین هم و ممکن هم نیست که بیقین برسد <تصفيق> و داشته علمی امروز هم, هم اصلاً امروز ای نظر این نظر به یک نظر پوچ و مزخرف در زبالتانی های تاریخ گذاشته شده ولی بعض حرکت های ملحد همیشه ای ای این نظر به یک نظر الهادی و به یک حربه بسیار قوی در مقابل مسلمانو نظریات دین داری چه میکنن مطرح میسازن جزاك الله خیر استاد محترم ازی که در مورد دیدگاه های جهان راجع به خلقت انسان بر ما معلومات های را ارائه کردین شنیدیم که در دیدگاه های کفری یا جاهلی یک نظر وجود داره که انسان یک وقت مکروب بود بلاخره مکروب تکامل کرد با شادی تبدیل شد و شادی تکامل کرد به انسان ولی در اخیر بالای از اینا سوال صورت میگیره که انسان که تکامل میکنه بالاخره به چی تبدیل میشه و یک نظر پوچ مزخرف از اینا بود و برعکس یک دیدگاه اسلامی است چنانکه الله تعالی مراحل خلقت انسان را در سوره مؤمنون و در دیگر سوره ها ذکر نموده ولی چونین نظر که اسلام و مسلمان ها راجی به خلقت انسان دارن ای جهان کفر هم امروز تعیید میکنند انشاءالله در برنامه های آینده باز هم بالای دیگر مذاهیب و ادیان و نظام ها بحث خواهیم کرد راجعه به نظام دیگر دیگه بر ما استاد معلومات خواهد داد چون وقت برنامه ما با پایان رسیدن با شنونده ها لاحافظی میکنیم تا برنامه اینده که باز هم در شما قرار میگیریم ایشان را به الله عزوجل وجل مسباریم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته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 شنوندگان از زی رادیو صدای خلافت به بخشی پیام ها خوش آمدید. قراری که میدانید ما در این ناخیر برنامه را زیر دست گرفتیم برنامه دلگفته های شما و به خاطر اخذ نظرات و پیشنهادات شما صفحات را در اینترنت ایجاد نموده ایم. که نظر به بعضی مشکلات نمی توانیم آدرس دقیق را از طریق رادیو بگوییم دوستان می صفحه صفح پیامگیری ما را در تلگرام، فیسبوک و غیر صفحات اجتماعی در یابند. حال، بعضی پیام هایی که دوستان از صاحات مختلف بر رادیو صدای خلافت فرستاده اند را به خانش می گرم. برادر ما به اسم ابو معویه خراسانی می نویسه السلام علیکم برادران عزیز و مجاهدم در خراسان امیدوارم الله شما را حفظ کنه و نصرت کند بر علیه کافران و از زحمات زیادتان برای نشر دین اسلام و حقایق دعا می کنم الله عجر شما را در آخرت بدهد و پیام من به برادرهایی است که نشید فارسی از دولت اسلامی زیادتر بگذارید جزاک الله خیران خب به جواب بیادر میشه بگم که ما در تلاشی هستیم که ترانه های فارسی را از طریق رادیو نشر برسانیم اما متاسفانه تا کنون از دولت اسلامی تو ترانه های زیادی به زبان فارسی به نشر نرسیده و کار جریان داره سری ترانه هام ها انشاءالله در آینده نزدیک ای مشکل حل میشه. به ارصورت جزاک الله ابو معاویه خراسانی. برادر دیگه ما نوشته میکنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکات زین العابدین استم از ولای تهرات. در این ماه مبارک برای همه شما موحیدین دعای خیر دارم. جزاکالداخیران بیادر محترم زین العابدین ما هم در این ماه مبارک رمضان برای همه کسانی که محبت با دولت اسلامی دارند وای خیر میکنیم بیادر دیگه ما اسم خود نوشته نکرده میگه السلام علیکم برادران چرا در نشر اخبار مجاهدین خراسان سستی میکنید به جواب بیادر میشه بگوییم که قرار که به دوستاو و به شنونده ها معلوم است که مشکلات زیادی در نشر و پخش اخبار مجاهدین خراسان از طریق وجود داره ای به این معنی نیست که در خراسان سخنی وجود نداره و هیچگونه عملیات، هیچگونه کاری صورت نمیگیره. ای به این معنی نیست بلکه مشکلات در قبال نشر و پخش اخبار در وقتش است که نظر به بعضی مشکلات تکنیکی. ان امید در وقت خود از طریق رادیو به نشر برسانیم اما کشش ها و تلاش ها به هدفی همور کردن این گونه مشکلات جریان داره امیدواریم که برادران منتظری فعالیت ها از خراسان باشند و همچنان برادران منتظری شنیدن اخباری دقیق و اخبار خوشحال کننده از طریق رادیو صدای خلافت از احوال خراسان باشند بیادر دیگه ما به اسم آرش تنها نوشته میکنه سلامهای گرم خود را خدمت تمامی برادران و شیران خلافت از سمیم قلب تقدیم میدارم به امید پیروزی های هرچی بیشتری دورت پرتوان و نیرومندمان در سراسر سر جهان و حاکمیت شریعت ناب الهی بنده با قدر و استطاعت بشری در خدمت دورت خلافت قرار دارد الله و بی توفیقه الله خیرن بیادر محترم الله از شما راضی شفت و در اخیر بیادر دیگه ما و اسم امار از قندوس پیامی سوتی فرستاده که توجه شما را به شنیدنی پیام جلب می دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو این جانب امار از قندوس پیامی دارم برای مردان خلافت اسلامی. الله تبارک تعالی شما را عزت بخشت بیشتر از این تاخار شوین بر چشم کفار شفای شوین بر قلبی مؤمنین. الله تبارک دعالا به دستای شما روم را فتح بسازد. ای شیرمردان خلافت، شما هستین که عزت دوباره مسلمین را برمی گردانین. الله تبارک دعالا شمشیرهای شما را بران بگرداند. و الله قسم شما حق هستین از بر حقانیت شما کفر بر طاغوت شما از بر حقانیت شما جمع شدن امت ها علی شما بر حقانیت شما جمع شدن یهودی سلیبی کفاری تمام دنیا علی شما و والله قسم حق استین شما هیچ شک در این وجود ندارد که حق استین شما همون لشکری که رسول الله صلی الله علیه و آله بشارتیان را داده از خراسان شما هستید حق است ای مردانی صحابه صفات الله تبارک تعالی شما را حفاظت کند از گزندی روزگار شمشیرهایتان را بران بگرداند و همیشه درهای فتح و پیروزی را برایتان باز گرداند السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شنوندگان عزیز این بود پیام هایی که دوستان و مخلصان رادیو صدای خلافت از مناطق مختلف به استودیو ما فرستاده بودند شما نیز می توانید پیام ها و پیشنهاداتتان را به ما ارسال کنید چنانچه پیشترم متذکر شدیم آدرس ما را در تلگرام، فیسبوک و صفحات دیگر اجتماعی دریابید و نظرات و پیشنهاداتتان را به ما بگذارید و ما از طریق امواجی صدای خلافت و خانش میگیریم تا پیام های دیگر اللّهٔ نجهدارتاً و السلام علیکم و رحمت اللّه و بركاته. نسمو متوحدي نسمو متوحدي نسمو